خب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن وعلى ما بعد اولين درس از كتاب النحو الواضح في قوائد اللغة العربية كي براية ابتدائي نوشته شده اين كتاب حسنش دارين كي اول ميات امسلعي رو ذكر مكوده سپس بر اساس امثله میاد اون قواعدشو توضیح میده و واقعا همانطور که اسمش النحو واضح هست حقا و انصافا مطالبش هم خیلی واضح هستند الامثله البستانو جمیل، باغ زیباست الشمس طالعتون شم علي وردتان قطف محمد زهره يعيش السمك في الماء يكثر النخيل في مصره دي قد داشته باش دو جمله اول جمله اسمی هستند یعنی با اسم شروع شدند البستان جميل والشمس طالعه دو تا جمله بعدی یعنی سه و 4 با فعل ماضی شروع شدن بشون میگن جمله فعلیه شمع علیون وردتن علی گل را بو اید قطف محمد زهرتن خب این دو تا جمله فعلیه هند منطقه با فعل ماضی دو جمله آخری فعلیه هند با فعل مزاره یعیشو السمک فی الماء یکسر النخیلو فی مصر حالا اگر تو این امثله دقت بکنی اینا همشون جمله مفیدن اینا همشون جمله چند؟ بیا روی قوا... قاعده چون ده ده بحث خیلی آسانی است قاعده چی میگه القاعده قاعده یکم کتاب التركيب الذي يفيد فائده تامه یسمى جمله مفیده ترکیبی که فائده تام داشته باشه جمله مفید نامیده میشه یعنی موقعی گوینده سکوت کنه شنونده رو فایده گیر بیاد بله و یسما ایضا کلامن این جمله مفید همچنین کلام نامیده میشه جمله مفید همچنین کلام نامیده میشه قاعده اول قاعده دوم الجمله المفیدته قد تترکب من کلمتین جمله مفید گاهی ترکیب میشه از دو کلمه، از چند کلمه کمتر از دو کلمه دیگه نداریم، با کلمه نمیشه جمله مفید گفت. اگر بگیم زید جمله مفید نیستیم زید استاد است این یه جمله مفیده. الجملة المفيدة قد تتركب من كلمتين جمله مفید گاهی ترکیب میشه از کلمه از دو کلمه. و قد تترکبو من اکثر و گاهی بیش از دو کلمه و کلو کلمت فیها توعدو جزعن منها و هر کلمه در آن جزئی از آن شمرده میشه البستان و جمیلون بستان یک جزء و جمیلون جزء دیگه دیگه این درس خیلی خیلی ساده هست تمارینی که آورده هست همشون مثل همینات یعنی تمارینش مثل امثله ساده ساده اند شما تمریناتو اگر داخل دفتری بنویسی و حل کنی و اونجایی که گیر کردی از بقیه دوستان کار بگیری تو تمرینا شما رو تقویت میکنه جایی که هم از خودم خیلی عالی میشه چون اینجا ما قواعدو میخونیم این کتاب خیلی ساده در سطح, سطح نظمیر و پایینتر. که این کتاب به ازن الله میخونیم که بعدش جز بعدیش رو خواهیم انشاءالله. پس این شد انشاءالله قاعده اول و دوم اجزاء جمله اجزاء جمله امشن رو دقت بفرما؟ در این درس میخواد که بگه کلمه برسنوه اسم فعل حرف رکب ابراهیمو الحسانه یداعب اسمایلو القطة يحصد الفلاح القمح تأكل الشاطو فولا وشغيرا سمعت النصيحة يستع النور في الحجرة تجري السفينة على الماء هل تحب السفرة؟ إن جا دي قد داشت باش هشتا أمسلها ورده است كنتا مصالها ورده است میگه در امثله موقعی که دقت کنیم مثال اول ابراهیم و حیسان اصلا تکی بحث میکنیم رو حل میکنیم رکیبه چه هست فعله ابراهیم چی اسم الحسان باز هم اسم ابراهیم اسم شخصه حسان که همون اسب هست رکب ابراهیم و رکبه معنا داره به تنهایی و همراه باز زمان گذشته هست سوار شد اولی که معنا داره و همراه باز زمان هست بهش میگن فید موقع که ما میگیم خورد دلالت بر این کنه که گذشته خورده یا فردا میخورد همراه با زمان آینده است ها ولی موقعی میگیم خودکار ای آی این همراه با زمانه ی نه دلالت بر زمانی میکنه نمیکنه ابراهیم و حسن دلالت بر زمان نمیکنه، ولی رکب دلالت بر زمان میکنه سوار شد پس رکبه میشه فعل اما ابراهیم اسم حسان هم اسم فعلولی که دلالت معنا داره ولی دلالت بر زمان میکنه اسم معنا داره ولی دلالت بر زمان نم کنه. حرفونی که به تناایی معنا نداره، ولی در جمله که بیاد معنا داره. پس یوداعیبو دلالت بر زمان مزاره. اسمایل که اسمه هم اسمه. یحصو دل فالله القمحه درام میکنه کشوارس گندم را یحصو دل فال مزاره. دلالت بر زمان میکنه. فالله اسمه فائل القمحه مفعول بهیه و اسمه. تاکلو شاتو فولا و شغيرن. اینجا تاکلو فعل دلالت بر زمان میکنه شات اسم فولا اسم شغیرن هم اسم. پس رکیبه یدائبو یحصلو تاکلو سمعتو یستعو تجری و تحبو اینا چه هستند؟ اینا فعل هستند در زمانی خاص بعضی ماضی و بعضی مزاره و بعضی هم بر دلالت حاضر دلالت بر زمان حاضر یا عنده میکنند که همون مزاره هست هر یک از اینا رو فیل میگند اما ابراهیم حسان اسماعیل قیت فلاه قمح شاد فول شعیر النسیحه النور الحجره السفینه الماء السفر اینا چه هستند؟ اینا اسم هستند حالا باری دیگر بیم جمله ها رو جمله های تا جمله آخر 6 و هفت و هشت نگاه کنیم در اینا کلمه مثل فی اومده در شماره هفت علا اومده و در شماره هشت حل اومده اینا حرفند چون اینا به تنهایی معنا ندارند ولی زمانی که در جمله بیاند معنا دارند حالا بیر روی قائده القائده قائده ثوم الکلمتو ثلاثتو انواعیم کلمه بر سه نو هست اسم و فعلون و حرف اسم فعل و حرف که در امثلی نارو توضیح دادیم فالاسم کل کل یو سما به انسانون او حیوانون او نبات، او جماد او ایوشه شیء آخر اسم هر لفظی که نامگذاری بشه به وسیله آن انسان یا حیوان یا نبات یا جماد یا هر چیز دیگری هر چیز دیگه که بوسیله اون نامگذاری گزاری بشه اسمه و الفعل کل لفظی یا على حصول عملی فی زمن خاص و فعل هر لفظی که دلالت بر حصول کاری بکنه در زمانی خاص و زمان ستا هستند یا گذشته یا حاضر یا آینده حالا چه دلالت بر زمان گذشته بکنه چه حاضر چه آینده فعله که اون موقع انوای دیگه‌ای داره که در درس بعدی می‌خونیم انشاءالله شاء الله. والحرف كل لفظ لا يظهر معناه كاملا الا مع غيره. حرف، هر حر لفظی که معنیش ظاهر نمیشه کامل مگر با ترکیب دی... ج... کلمات دیگه. مثلا من من تنهایی معنیش میخواد چی بکنی؟ ولی موقعی که بگیم من زاهدان الی تهران میگی از زاهدان تا؟ بله. و درس سوم که چون فعلو خوندیم اینجا تقسیم فعلو به اعتبار زمانش میخوریم. الفعل مازی ابتدا فعل مازی جرال کلب وقف الرجل ضاع کتاب دقت ساعت جاعت البنتو بابت الدجاجتو سگ دوید جرا وقف داال دقت جاعت بابت اینا همشون فیلند اینا همشون چیان؟ و و دلالت بر چی زمانی میکنند؟ دلالت بر گذشته میکنند. سگ دوید مرد ایستاد کتاب زایع شد. خب الفعل الماضي هو کل فعل یا دلو حصول عملن في زمن الماضی خیلی جالب و ساده توضیح داده است میگه فعل ماضی فعلی است که هر فعلی که دلالت کند بر حصول کاری در زمان گذشته هر فعلی که دلالت کند بر حصول کاری در زمان چه؟ باید. این فیلاه جرا و قفه دقت جاعت بادت اینا فرقشون میدونی گروه اول با گروه دوم چیه؟ گروه اول مذکرند گروه دوم تای تانیس دارند چون کلب و الرجول و الكتاب مذکرند از ساعت و البنت و الدجاجه موننسند ساعت زنگ خورد جاءت البنت دختر آمد بابت دجاجتو مر تخم گذاشت حالا پس گفت الفعل الماضي فعل ماضی هو كل فعل هر فعلی که يدل على حصول عمل دلالت بر حصول عملی کند فزمن الزمن الماضی در زمان گذشته. شما دیکی قبلا چه کتاب خوندی در صرف؟ ميزان خلاص ميزان خوندي ديگه إنا درسته ميزان الفعل المزاري فعل المزاري أغ... أغسل يدي ألبس ثيابي ينبح الكلب ينتبه الحارس نلعب بالكرة نمشي في الحقول تأكل البنت تذبل الوردت أغر إن جدي قداشت باشي تمام این فیل ها فیل بودند. مزاره بودن. کن اغسل و یدیه دو دستم را میشویم البس ثیابی لباس هایم را میپوشم ببین اگر گفته بود پوشیدم معنی فرق می, کرد. می پوشم. ین بحل کلبو ساگ او او می کند. ین تبه الحارس نگهبان بیدار میشود نلعبو بالکورتی بازی میکنیم با توب نمشی فی الحقول راه میروین در کشته ها. تاکل البنت دختر میخورد. تزبلو الوردتو تو میشه گل. شکوفه. شکوفه چی میشه؟ پژمرده میشه. الفعل المضارع. دقت کن در فعل مضارع کتاب خیلی ساده هست. فعل مضارع هو کل فعل یادخلو. على حصول عمل فی الزمن الحاضری او المستقبلی. هر فعلی که داخل میشه بله یا یا یا اینجا اشتباهی چاپی است. هر فعلی که دلالت میکنه بر حصول عملی در زمان حاضر یا مستقبل آینده پس هر فعلی که دلالت کند بر حصول عملی در زمان حاضر یا آینده ولا بد أن يكون مبدوءا بحرف من أحرف المضارعة وباياد. فالمضارش شروبشة باحرف أز حرف هاي المضارع. وهي إبرة أز الحمزة، همزة والنون، نون واليا، يا والتا تا در أمثلة برب جرب. أغسله، ألبسه. باتش شروشنا با همزة. ينبحه، ينتبهه. باتش شروشنا با يا. نلعبو با نمشی با نون تاکلو تذبلو با تا پس فعل مزاره باید با یکی از این چار حرف خب از سیغه اول که شروع کنیم تا چارده ستای اولی با پنجونی یاد دارند بقیه تا دارند متکلم وحده حمزه داره متکلم ملغر نون داره یعنی اکثرا تا دارند اکثرا چی دارند؟ یکی رو داریم که فقط حمزه داره اون متکلم وحده یکی رو داریم که نون داره اون هم متکلم ملغیره و چهار تا رو داریم که یا دارن باقی مونده همه چی دارن با تا شروع میشه خلاصه با یکی از این چهار حرف میگه شروع بشه فعل الامر اما فعل الامر العب بالکورتی اطعم اطعم قطک، نظف ثیابک نم مبکران، تمهل في مدغت طعامی بله این کتاب رو شما بردار اشتباه چاپی زیادی داره نه کتابه دیگه هم هست خب اینجا دقت داشته باش فعل امر رو آورده اول قایده شو بخونیم بعدا روی امثله توضیح میدیم فعل الامر هو کل فعل یو طلب و بیهی حصول و شئین فی الزمن المستقبل تعریفش آورده میگه فعل امر هر فعلی است که طلب کرده میشه به وسیله اون فعل حاصل کردن چیزی در زمان آینده فعل امر هر فعلی که طلب بشه به وسیله اش حاصل کردن چیزی در زمان آینده ایل عبق بازی کن با تو خب این طلب دیگه چه العب لعب, لعب يلعب العب لعب بازی کرد يلعبو بازی میکنن العب بازی بکن اینجا چون عین الفعل کسره داره حمزه کسره میگیره چون عین الفعل فتحه داره حمزه چی میگیره ببین این علامت هم حرکت همزه رو ما از روی عین مشخص میکنیم اگر عین الفعل داشت بهش زمه میدیم مثلا یانسرو فعل فیل امر حاضرش میشه انصر یانسرو چون زمه داره ولی یسمع چون فتحه داره میشه اسمع یذرب چون کسر دارم داره میگیری میشه اذرب پس همزه واس یا کسر میگیره یا فتحه یا کسر میگیره یا زمه اگه زمه داشت بهش زمه میدیم در غیر این صورت بش ولی این مال مجرده های مال مزیدا نه بسن مال باب افعال همیشه فتح میگیره خودش آورده اتعم اتعم قطتک گربهت رو غذا بده اتعم فعل امره همیشه برماند نظف صیابه این مزیده از باب تفیل یو نظفو یا رو بر میداری؟ تو نظفو تا رو بر میداری؟ فعل امر درست میشه نظف نظفا نظفو الى آخر نم بخاب تمهل آ بر مهلت. این مثال آخری کتاب شما چه نوشته درش بله. این اشتباهه این هست؟ بله این عجیدو فیل مزارع م talking وحده هست. و جدا این دیگر داشته باش؟ جان؟ قلای آخر عجیب نباد می گفت. و جدا یجیدو عملش میشه جد. عملش میشه چی؟ جد. آها این مجرد نیست درست درست مالشون ساکنه پس درست این اجد هست اجد فعل امره باب افعال ولی مجرد نیست عجد فعل امره باب چه مثل اطع اطاع اطع, اطع اطع اطع کن اجاد یوجید و اجد عجد تام یعنی غذا رو به خوبی بجو غذا رو که میخوری به خوبی بجو من فکر میکردم ابتدا که وجده یجیدو هست به معنی یافتن ولی بعدا متوجه شدم که نه اون فعل امرش میشه جد این فعل امر اجید باب افعال هست از اجاده یجیدو اجید مثل اقام یقیمو اقیم اطاقه یطیعو اطع ادار یدیرو ادر ادر که و ناول ها اون ادری که در فعل شعر اومده اون فعل امر باب افعال است پس تا همین جای کار کافی هست سه تا درس و سه تا درس که نه ولی قواعد رو به اندازه امروز خوندیم بستگی به کشش شما داره